اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی به نام خداوند بخشنده بخشایشگر بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید خلق الانسان من علق همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد اقرأ و ربك که پروردگارت از همه بزرگوارتر تر است الذي علم همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود علم الانسان ما لم يعلم. و به انسان آنچه را نمیدانست یاد داد کلا <تصفيق> نیست که شما میپندارید به یقین انسان تقیان می کند استغنا از که خود را بینیاز ببیند این و به یقین بازگشت همه به سوی پروردگار توست ارائیت الگی به من خبرده آیا کسی که نهی می کند بنده ای را به هنگامی که نماز میخواند. آیا مستحق عذاب الهی نیست ارائیت این کان به من ده؟ اگر این بنده به راه هدایت باشد او یا مردم را به تقوا فرمان دهد آیا نهی کردن او سزاوار است به من خبر ده اگر این پیغمبر حق را انکار کند و به آن پشت نماید آیا مستحق مجازات الهی نیست؟ بأن الله آیا او ندانست که خداوند همه اعمالش را میبیند؟ چنان نیست که او خیال میکند اگر دست از کار خود بر ندارد ناسی اش موی پیش سرش را گرفته و به سوی عذاب می کشانیم همان ناصیه دروغ گوی خطاکار را سپس هر کرا می خواهد صدا بزند تا یاریش کند الزبانیه ما هم به زودی دو دوزخ را صدا میزنیم. چنان نیست که آن طغیانگر میپندارد هرگز او را اطاعت مکن و سجده نما و به خدا تقرب جوی